قصه‌ی هزار و یک شب شبی هجدهم خلیفه فرمود که این حکایات را بنویسند و به خزانه بسپارند پس از آن به دختر بزرگ گفت که افریت را پس از جادو کردن خواهرانت دیده یا نه؟ دختر گفت ای خلیفه ندیدم ولی که موی از گیسوان خود فرو گرفته به من سپرده است که هر وقتان موی به سوزانم حاضر شود. پس خلیفه موی افریت را از دخترک بگرفت و به سوزاند. در حال قصر به لرزه درآمد و افریط پدید شد چون مسلمان بود به خلیفه سلام کرد و گفت این دختر با من احسان کرد و مرا از حلاک خلاص کرد و دشمن مرا بکشت من به پاداش نکوی او خواهرانش را که بر او کرده بودند به جادویی دو سگه سیاه کردند اگر خلیفه خلاصی ایشان را بخواهد من ایشان را خلاص کنم و به صورت نخستین بیاورم خلیفه گفت نخست ایشان را از جادو خلاص کن پس از آن من جستجوی آن ستمکار کنم که این دختر بیا زرده و تنش را بدین سان کرده افرید گفت من او را نیز بشناسم بدان که او نزدیکترین مردم است به خلیفه پس افریط تاس آبی را فسونی بردمید و بر آن دو سگ بپاشید در حال به صورت نخستین برگشته دو دختر آفتاب روی شدند پس از آن افریط گفت ای خلیفه آنکه تن این دختر به انسان کرده پسر تو امین است خلیفه را شگفت آمد و گفت منت خدای را که این دو زیبا سنم به احتمام من خلاص گشتند. خلیفه فرمود قاضی آوردند آن دختر را که خداوند خانه بود با دو خواهر او که به صورت سگ بودند بر سه ملک زاده نما کابین کرد و ملکزادگان را از خواص خود بگزید و دختری را که زن امین بود به دو داد و دلاله را خیشتن به زنی بیاورد حکایت قلام دروخ گو چون چندی بر آن بگذشت شبی از شبها خلیفه به جعفر گفت میخواهم که امشب به شهر اندر بگردم و از احوال حکام آگاه شوم و هر کدام از ایشان به زیردستان ستم کرده باشند معذول کنم پس خلیفه با جعفر و مسرور برخاسته به شهر اندر همی گشتند تا به کوچه رسیدند مرد سال در آنجا دیدند که دامی بر دوش و سبدی بر سر نهاده عصایی به دست گرفته نرم نرم همی رود و عبیات همی خاند. مراز دست هنرهای خیشتن فریاد که هر یکی به دگرگونه داردم ناشاد. بزرگ ز هنر در عراق عیبی نیست زمن ما پرس که این عیب بر تو چون افتاد. اما تویی که من از فضل در جهان بردم همان جفای پدر بود و سیلی استاد چون خلیفه عبیات بشنید با جعفر گفت این عبیات گواهی می که این مرد بسی بیچیز است خلیفه پیش رفته پرسید که ای مرد حرف تو چیست؟ گفت سیادم ایالمند از نیمه روز تا اکنون بسی بکوشیدم خدای تعالی روزی امروز به من نرسانید نومید بازگشتم و از زندگی به تنگ آمده درخواست مرگ میکردم خلیفه گفت اگر به کنار دجل بازگردی و به اقبال من دام در دجل بیاندازی هر آنچه که به در افتد به صد دینار زر از تو خواهم خرید. سیاد از این سخن شاد شد و با خلیفه به کنار دجله بازگشت و دام در دجله بینداخت. پس از ساعتی دام بیرون کشید. صندوقی گران در دام به در آمد. خلیفه صد دینار به سیاد داده صندوق بگرفت و او را به دوش مسرور نهاده به قصر بیاورد چون صندوق بشکستند گلیمی یافتند در هم پیچیده چون گلیم گشودند چادری دیدند چون چادر را برداشتند دختری کشته یافتند که تنش به نقره خام همیمان است. خلیفه چون او را بدید بگریست و گفت ای وزیر بی تدبیر چگونه بن تحمل توانم کرد که به عهد من مردم را بکشند و به دجله بیاندازند و به بر من بماند ناچار باید کشنده دختر را بکشم به روح ابوالحسن عبدالمطلب سوگند که اگر کشنده دختر پدید نیاوری همه ی آل برمک را بکشم چون جعفر خشم خلیفه بدید مهلت خواست خلیفه سه روز مهلت داد جعفر از بارگاه خلیفه به در آمده قمین و محزون همی رفت و به حیرت اندر بود که کشنده دختر چگونه به دست آورم و دیگری را بی گناه به جای وی چگونه به پس به خانه خیش رفته به تشویش اندر بنشست روز چهارم خلیفه او را بخواست از کشنده دختر باز پرسید جعفر گفت به جز خدا کسی از غیب خبر ندارد خلیفه در خشم شد و گفت چون سوگند خوردم امروز تو را بکشم پس منادی را فرمود که در کوی و محلت نداده دهد که جعفر وزیر به دار کشیده خواهد شد هر کس خواهد به تفرج بیاید چون منادی ندادر داد مردمان گروه گروه قصد تماشا کردند ولی همه از شنیدن این خبر ملول و گریان بودند و سبب خشم خلیفه را به جعفر وزیر نمیدانستند چون مردم گرد آمدند خادمان خلیفه چوب دار نشانده چشم بر حکم خلیفه و گوش بر فرمان داشتند که ناگاه جوانی نیکو شمایل را دیدند که های نو پوشیده به شتاب همیآید چون به میان جمع رسید خویشتن را به روی پای جعفر وزیر انداخته گفت هی وزیر دانشمند دختری را که به صندوق در یافته اید من کشتم به قصاص او مرا باید کشت چون جعفر این را شنید به خلاص خیش شاد گشت و به گرفتاری جوان محزون بود که ناگاه پیر سال ای را دیدند که مردم به کنار میکند و شتابان همی آید چون به نزد جعفر رسید گفت ای وزیر این جوان تقصیری ندارد به خیشتن بهتان میزند دختر را من کشتم مرا به قصاص او باید کشت جوان گفت ای وزیر این پیرمردی کم خرد است و نمیداند که چه میگوید دختر را من کشتم به قصاص او مرا باید کشت پیر روی به آن جوان کرده گفت ای فرزند تو هنوز از جوانی بر نخوردی و در دل بسیار عرضو داری تو را کشتن نشاید من پیرمو از زندگی سیرم جان خود بر تو و بر وزیر فدا میکنم. چون وزیر این سخنان بشنید شگفت ماند و پیر و جوان را پیش خلیفه برد و گفت ای خلیفه کشنده دختر پدید آمده خلیفه گفت از این دو کدام یک کشت؟ جعفر گفت جوان گوید که من کشتم و پیر نیز گوید که من کشتم خلیفه از ایشان باز پرسید هر دو همان گفتند که با جعفر گفته بودند خلیفه گفت هر دو را بکشند جعفر گفت ای خلیفه کشنده یکیست قصاص از هر دو ستم است جوان گفت به خدایی که آسمان بیافراشت تا و زمین بگسترد دختر را من کشتم و نشان از صندوق و دختر همی داد تا به خلیفه آشکار شد که او کشته خلیفه را عجب آمد و با جوان گفت سبب کشتن دختر چه بوده و چون است که این گناه نمی پوشی و در حلاک خود همی هم کوشی؟ جوان گفت این دختر زن من بود و این پیر مرا اما او را پدر است این دختر در خانه من سفرزند بزاد و مرا بسیار دوست داشت. من از او بدی ندیده بودم. در آغاز همین ماه بیمار شد. طبیب آوردم. بهبودی روی داد. خواستم که به گرما بفرستم. گفت بهی آرزو دارم که او را ببویم و بخورم. من در حال به جستجوی به از خانه به در آمدم و آن روز بسی بگشتم. به پدید نیاوردم و شب را به فکرت به سر بردم چون بامداد شد از خانه بیرون رفته ها بگشتم و از باغبانان بپرسیدم یکی از ایشان گفت آنچه تو میخواهی در بقداد یافت نخواهد شد ولی خلیفه را به بصر اندر باغی است سی درختان به دارد و باغبانان آن باغ همه روزه به چیده و برای خلیفه میآورند. پس مرا محبت دختر بران بداشت که به بصره روم پانزده شبان روز رفتم و بازگشتم و سدان به به سه دینار خریده بیاوردم پس از چند روزی به دکان رفته به معامله بنشستم غلام سیاهی را دیدم که بهی در دست دارد به او گفتم که این به از کجاست که من نیز بخرم خندید و گفت این به را از محبوبه خود گرفتم چند روز بود در سفر بودم چون بیامدم محبوبه را رنجور و نظار یافتم و سدان به در بالین داشت یکی به من داده گفت شوهر قلتبان من اینها را از بسره آورده چون سخن قلام بشنیدم جهان به چشمم تیره شد، دکان برچیده به خانه آمدم، از غایت خشم، عقل و شعور از من رفته به سان دیوانگان بودم، دیدم که دو دانه به در سر بالین دختر است، از به سیامین جویا شدم، دختر گفت ندانستم چکست برداشته است، من سخن قلام راست پنداشتم، کاردی برگرفته به فراز سینه دختر نشستم و او را بکشتم، و به گلیم اندر پیچیده به صندوق نهادم و صندوق بر استری نهاده بردم و به دجلش طرف کندم. ای خلیفه زودتر مرا بکشو قصاص از من بستان که من بسی بیم از مکافات روز خیز دارم به سبب اینکه چون من صندوق در دجله افکنده بازگشتم پسر مهتر خود را دیدم گریان است سبب گریه پرسیدم و او از ماجرای مادر آگاه نبود. گفت بهی از صدان به که در بالین مادر بود بگرفتم و به کوچندر بازی میکردم. غلام سیاه بلند بالایی به از من بستد و گفت این به از کجا آورده ای؟ من گفتم مادرم رنجور است. پدرم به بسر رفته سدان به به سه دینار خریده و آورده است که مادرم آنها را ببوید. غلام به سخن من گوش نداد به از من بوده برفت من از بیم مادر گریانم چون سخن کودک بشنیدم دانستم که قلام بهتان گفته و من دختر را به ستمگری کشتم پس غمین و محزون نشسته همی گریستم که ام من همین پیر به نزد من آمد ماجرا برو بیان کردم اونیز در پهلوی من به ماتم نشست پنج شبانه روز است که گریانیم و به کشتن دختر افسوس همی خوریم را به اجدادت سوگن می دهم که مرا زود بکش خلیفه گفت ممکن نیست نخواهم کشت مگر قلام را به اینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است.